ایران ویج بازنگری در تاریخ قلم روه میانیم هزاری دوم میلا هزاری قربه ولی یک ایده جالبی داره میگه که هزاری قرب رو به پایانه میخوام قبل از اینکه ما وارد بشیم به اون اثار تاریخ و پیش از تاریخی یک باستان باستانشناسی و اون کارهایی که در جای دیگه از دنیا شده صحبت کنه بله میگن آمریکا برای این آمریکا شد که راه آهن بود وگرنه مثل اروپا کشورهایی جدا جدا میشد میگن اگه 50 سال زودتر راه ان اخترامی شد اروپا به جایی که الان اتحادیه بشه همون موقع مثل آمریکا یک کشور میشه. به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید قسمت سوم برنامه ایران وجد رو در خدمت شما هستیم. در دو قسمت گذشته ما به مقدمات بحثمون پرداختیم. زمن انتقاد و همچنین نقد مبانی تاریخی که در حال حاضر در ایران تدریس میشه اون تاریخی که به عنوان تاریخ رسمی گفته میشه و دلایلی که دوستان گرامی و کارشناسانی که بودند، اونها رو زک فرمودن در برنامه گذشته جناب آقای ایران مهر بودن جناب آقای کریمی و جناب آقای فیروزی که خدمتون معرفی کردیم در این قسمت ما یک کارشناس ای که در هستیم و هفته پیش هم فقط یه اسمی ازشون آوردیم سر کار خانم دکتر آزادی احسانی هستن کاندیدای دکترای شناسی دپارتمان ادیان دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا حالا من یه توضیح در مورد کاندیدا لفظ کاندیدای دکترا یعنی کسی که واحدها و درس‌های دکترا رو پاس کرده در ایران معمولاً اینجوری میگن حالا ما نمیدونم حالا خانم دکتر تو کانادا چجوریه از به حضورتون که ازمون و جامعه رو دادن فقط منتظر دفاع از تز پایان نامه شون هستن که در واقع مدرک دکترا رو اخذ کنند. بگذریم حالا. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خانم دکتر خب حالا شما تو دو جلسه گذشته تشریف نداشتید. بنده جناب آقای ایران جناب آقای کریمی و جناب آقای فیروزی که در این برنامه تشریف ندارن و امیدواریم امید در قسمت های آینده در باشیم. حالا این قسمت غیبت ما به نقد مبانی که نخستین مبنایی که برای نگارش این تاریخ که در صد سال اخیر برای ایران نوشته شده بحث مهاجرت هستش. یه مهاجرتی هستش که کاملا مخشوش در تاریخ گفته شده از 5000 سال پیش تا 4000 سال پیش تا 3500 سال پیش اصلا مبدایشم حتی مشخص نیست برخی‌ها میگن از سیبری برخی‌ها میگن از آمودریا از استپ‌های آسیا میانه برخی‌ها از اوکراین استونی لوتونی هم حتی این رو میگن یه اقوامی اومدن به نام آریایی قومی به اسم آریایی اومدن و اون ساکنان و بومی فلات ایران رو تقریبا قتل عام و مقتول نس کردن و اینجا ساکن شدن و تا الی آخر بعد مادها و هخامنشی‌ها و فلانی فلانی‌ها خب ما یه سری نقدها و همچنین ایراد که این نوع تاریخ نویسی وارد هستش اینها رو تون برنامه کردم که ما, اساساً ما ایرانی ها تا قبل از 150 سال پیش تاریخ رو به نوعی دیگه می دیدیم و به نوعی دیگه برای ما روایت می ولی خب یه شانس تاریخی که اون تاریخ نویس های جدید آوردن در دوره انباشت علم این تاریخ رو ارائه کردن در دوره که دستگاه چاپ به وجود آمد و چاپ و نشر کتب و کاغذ و اینها به اوج خودش رسیده بود شاید مثلا 150 سال پیش کتابی با چاپ سنگی چاپ میشد فوقش دو تا سه تا نسخه یا 10 تا نسخه ازش چاپ میشد خیلی برد نداشت ولی الان کتابی چاپ میشه راحت میتونه در یک میلیون نسخه چاپ بشه و همگیر بشه لازمه در دوری همگیگیری علم این شانس تاریخی رو آوردن و این تاریخ رو به عنوان تاریخ رسمی قبولوندن به اکثریت آکادمیسیان ها و همچنین دانشجویان و توی ایران و معمولا سلاسه جان و در این ها جناب آقای کریمی هم فرمودن معمولا یه ده درصدی هست حتی در خارج از کشور که ایران شناسا و این تاریخ را اصلا قبول نداره خب حالا ما خیلی مایل هستیم که در این برنامه دلایل شما رو بشنویم شما به عنوان تا اونجا که ما خبر داریم منتقل این تاریخ هستید دیگه شما دلایلتون برای انتقاد و نقد و رد این تاریخ چی هستش زمین سلام علیه که با شنوندگان عزیز می فرمایید شما شما رمیشتم من درود میگم به همه شنوندگان امیدوارم که همه گیه خوب باشن من میخوام از در واقع یکی از واحدای درسی که توی همون دانشکده ادیان دانشگاه کنکوردیا ما باید میگذروندیم شروع کنم بله یک واحدی بود فکر می کنم حالا اگر درست بگم دقیقاً تئوری ادیان بود اسمش درست. یک درسی بود یه سمیناری بود که ما اونجا بررسی های مختلف میکردیم روی تاریخچه دین و تاریخچه علم دین و اینکه اصلا از کی دانشمندان آغاز کردن به مطالعه کردن درباره تاریخچه علوم در واقع انسانی که حالا یک بخشش دین باشه و اونجا من برای اولین بار من هیچ وقت توی ایران با چنین چیزی آشنا نشده بودم که یعنی ما بیایم سابقه پیدایش علوم انسانی رو بررسی بکنیم و ببینیم این علوم مثلا حالا شکلهای مختلفش حالا ما چون تو دپارتمان عدیان بودیم دین شناسی در واقع مطالعه عدیان حالا شما این رو میتونید تعمیم بدید به مثلا سابقه پیدایش علم مثلا باستان شناسی سابقه پیدایش علم مردم شناسی همه اینا رو میتونین در نظر بگیرید. اونجا یکی از استادای کتابی به ما معرفی کرد به اسم Savage Systems یعنی مثلا سیستم های وحشی همچین چیزی بله. که نوشته یه آقایی بود به اسم دیوید چادستر این آقا الانم توی کیپ تاون تو آفریقای جنوبی فکر کنم اگه اشتباه نکنم رئیس دپارتمان دین هستش توی این کتاب این آقا داره توضیح میده حالا میگم این مثالی که من دارم میزنم راجع به دین هست ولی این رو میشه تعمیم داد به علوم انسانی بله. میگفتش که هر گاه که ما بر میگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این علم که حالا به عنوان علم دین فعلا توی این بحث داریم صحبت می‌کنیم راجعش کی در چه بازه زمانی و در چه شرایطی پدید اومده یعنی در واقع باید برگردیم نگاه بکنیم و ببینیم که در چه شرایطی پدید اومده و باید ببینیم آیا داده هایی که ما داریم که در اون بازه زمانی که این آقا تو کتاب بررسی میکنه قرن 16 همه تا 19 هم. توی این بازه زمانی این داده هایی که دانشمند ها تو اون دوره دادن اینا چقدر سندیت داره و پای و اساسش چی بوده عمومن حالا دیگه من همه کتاب رو نمیخوام ریز توضیح بدم عمومن داستان سر این بود که میگفت دانشمندان دوره استعمار که می رفتن توی این مملکتهای استعمار شده بررسی هایی که انجام میدادن برای ما امروز خیلی نمیتونه سندیات داشته باشه چون انگیزه های سیاسی پشتش بوده بله. مثلا فرض بفرمایید میخواستن زمین رو بگیرن از فلان تایفه آفریقایی مثلا فیلم کنم تایفه خوسا رو مثال میزنه و میان یک سری دانشمند همراه اینا هست همیشه یک سری حالا واقعا یا یا یه سری آدمند که میرن اونجا و تبدیل میشن به پرژوهش کرد اون شرایطبراشون جالب به نظر میاد و شروع اونکن پرژوهش کردن. و اینا موقعی که مثلا میخوان واژه‌ای که تو این کتاب خیلی استفاده میشه اینه که اون مردم اون منطقه رو دیهیومنایزد میکنن یعنی یه جورایی گفته میشه که اینا آدم نیستن انسان کامل نیستن باید. مثلا فرض کنید دانشمند دینشناس میاد میگه نه هیچ اثری از دین در اینها دیده نمیشه اینا کارهای عجیب غریبی برای خودشون میکنن دانشمند زبانشناس میاد میگه نه اینا زبان ندارن یک سری آوا همینجوری تولید میکنن و نمیدونم این اصلا یک زبان کامل نیست مثلا دانشمند مردم شناس میاد حالا روی سری ویژگی های فرهنگی و ایناشون کار میکنه میگه نه خیلی آثاری از تمدن و انسانیت در اینها دیده نمیشه یعنی سطح اینها رو از سطح آدم میارن پایین حالا چرا این کار میکنن برای اینکه زمین رو بگیرن بعد وقتی زمین رو میگیرن و فلان تایفه دیگه باهاشون مبارزه نمیکنه حالا دیگه مثلا زمین ها رو گرفتن بعد یواش یواش میان میگن خب به نظر میاد که اینا حرف میزنن یعنی یه چیزایی مبنی برای اینکه اینا یک سیستمی دارن که صحبت میکنن فکر میکنیم درشون باشه. یا انگار که مثلا یک پدیده به اسم دین درشون میشه پیدا کرد آره بعد اوواش اوش میان از این ور این حرف رو میزنن حالا همه اینا رو من گفتم فقط برای اینکه بگم که ببینید پشتوانه علمی که در دوره استعمار حالا ما الان اینجا بحثمون عموماً راجع به شرق شناسی و ایران شناسی پشتوانه این علم یک چنین چیزایی. پشتوانه این علم واقعا یک سری دانشمند نبودن که به نیت گسترش علم و دانش اومدن در شرق پژوهش کنن یک سری اهداف سیاسی اقتصادی داشتن اومدن شرق و بر اساس اون اهداف سیاسی و اقتصادی که داشتن و برنامه بلند مدت که داشتن اومدن اینجا پجروهش کردن کتاب چاب کردن داده دادن دانشگاه تحسیز کردن مواد درسی برای دانشگاه ها تحسیز کردن و الان خودشون در آمریکای شمالی برگشتن دارن اونا رو نقد میکنن. ما ما اینجا تو ایران نمیکنیم این کار. بله. این خیلی برای من عجیبه که چرا ما اینجا هستم به فکر اینکه واقعا علوم انسانی ما من اصلا دغدغم دق صرفاً تاریخ و باستان شناسی و اینا نیست. علوم انسانی ما به طور کلی باید یک جورای بازنگری بشه برش به خاطر اینکه این علوم انسانی پایه هاش داده‌هایی که تو دوره استعمار و با اون اقراض خاصی که می‌دونیم پشت این پژوهش ها بوده پدید اومده پس در نتیجه باید اینا رو بازنگری بکنیم این خیلی واقعا فکر می خیلی چیز ساده ای اگه به طور کلی بکنیم. شما علوم انسانی رو فرمودید که بازنگری بشه این کاملا فرامش کاملا متیم ما بحثمون رو خود تاریخ این تاریخ ایران چه ایرادهایی هایی داره چون ما تو دو تا برنامه گذاشتیم روی مبانی که این بر اساس اون این تاریخ نوشته شده رو نقد کردیم شما چه نقدهایی رو, رو روی این مبانی دارید ببینید حالا الان نمیدونم میشه واقعا ریز شد و نمونه و مثال اوورد بله برای چنان چنان نمیشه بهترین مثالی که الان میشه زد دقیقا همین قضیه هستش که اساسیت همه دوستان هم روش هست همین قضیه کوچ آریاییان خودتونم هم فرمودید ببینید الان توی هند دارن روی این موضوع کار میکنن روی پدیده آریایی بومی دارن کار میکنن یعنی کتاب در واقع در این زمینه یکی کی دو تا کتاب دادن بیرون در این باره که اصلا دارن روی این موضوع کار میکنن قشنگ اصطلاح همینه آریاییان بومی یعنی آریایی که در هند بوده حالا من کاری ندارم با اینکه حالا این واژه آریایی رو دقیقا از کی باب شد و چه جوری و... در فرهنگ لغات ما وارد شد و اینا اصلا با اون کار نرم نظرهای مختلف در این زمینه هست ولی این که امروز در هند یک سری دانشمند دارن فکر میکنن به این که ممکنه که پدیده به اسم کوچ در واقع به این شکلی که الان ما میگیم اتفاق نیفتاده باشه و یک پدیده به اسم آریایی بومی وجود داشته باشه این الان در حال بررسیه من نمیدونم چرا در ایران نباید بررسی بشه برمید. واقعا حساسیت عجیبی روشه که خیلی من جالبه چرا خب برمید. یک نظریه است بررسی بشه روش کار بشه چه اشکالی داره؟ ده. من نمیگیم حالا صد درصد الان مثلا فرض بفرمایید من که میگم این کوچ به این شکل اتفاق نیفتاده حرفم صد, در صد, در صد درسته ولی دارم میگم چرا راه برای مطالعه در این زمینه باید به وسیله یک سری که خیلی تعصب عجیبی روی این دارن که نه آریایی هم نمیدونم 3700 سال پیش از جنوب سیبری مثلا وارده خب این اصلا یعنی چرا بر روی این موضوع اینقدر تعصب وجود داشته باشه؟ اصلا وجوده چنین تعصبی روی این موضوع و این که باز بدارند کسانی رو که میخوان روی موضوع کار بکنند و انگ این که اینا بی سوادن و نمیدونم میخوان فرض کنید حالا کارای خیلی ملیگر آیان روی مثلا عجب و غریب بکنن همه چیز رو میخوان به ایران نسبت بدن اصلا یه حرفانیست این علمه داریم کار پژوهشی انجام میدیم به بحانه های اینجوری کسایی رو که میخوان در این زمینه کار بکنن رو میترسونن. من خودم به چشم دیدم کسی رو که مثلا میخواد در این زمین کار بکنه میترسه کار بکنه به خاطر اینکه اکثری بزرگان ممکنه بهش بگن که تو بیسوادی این حرفیه که داری می‌زنی. این این پدیده که چنین ترسی وجود داره در زمینه کار کردن توی این نظریه جدید این خودش اصلا به نظر ما مشکوکه نباید وجود داشته باشه باید کار کرده باشه برست. خیلی متشکرم از حضورتون شنو موقع ایران مهرگرامی خانم دکتر احسانی یه موضوع خیلی خوبی اشاره کردن اینکه برای ورود به یک سرزمین خاص به این کیس رو در مورد قاره آمریکا خیلی خوب اجرا کردن مثلا در مورد بومی های قاره آمریکا سرخپوستان ما مثلا جان لاک رو داریم که پیامبر لیبرالیسم هست و در واقع الان تقریبا سهلا چهار میلیارد انسان در واقع تحت لوای نظریات این آدم دارن زندگی می کنند این شخص همون شخصی بود که سرخپوست ها رو کافر میدونست ضد مسیح میدونست و افرادی میدونست که اینها زمین رو در واقع از بین میبرند مانع آبادی زمین هستند یا در واقع نوع زیستواری اونها رو مانع آبادی زمین میدونست و با همین در واقع فتوا حالا بیزا بگیم فتوا چه اشکالی داری اصلا خودشون دیسیژن میگن دیسیژن افت در ترجمه... کلمه دیسیژن بعضیا تصمیم هم میگن فتوا هم میگن بعضیا سیاست هم میگه ترجمه فتوا هم گفته شده با این فتوا میلیون ها در واقع سرخپوسته آمریکای شمالی کشته شدن از بین رفتن و همین کارم هم در مورد اونا انجام دادن که نه دین دارن نه آین دارن نه زندگی دارن نه کار دارن نه بر روی زمین انجام میدن و نه حتی زبان غسینو زبان هم ندارن چن تا به هم دیگه میگن و این مسائل و در واقع اون ساکنان بومی رو از سطح اون حالت انسانی پایین میارن و بعد بر اونها حاکم میشن بعد از اون حالا دارن میگن که نا یه تمدن هایی داشتن مایا ها بودن نمی شایان ها بودن اینها تمدنی از خودشون داشتن حالا بگذریم خب ما ضمن انتقاداتی که ضمن برنامه گذشته و همچنین اوایلین برنامه شروع کردیم از تاریخی که نگاشته شده برای سرزمین ما و ما میگم که این تاریخ درست نیست و باید بازنویسی بشه، بازاندیشی بشه و بازشناسی بشه و حتی منظورمون هم مشخصاً تاریخ ایران نیست. اتفاقا تو تیزر برنامه میگیم بازشناسی تاریخ میانی. تاریخ میانی ما می‌گیم خیلی استرالی هم نداریم که آقا ایران ما میگیم که یه فلاتی هست، یه منطقه میانی هست، یه جذابیت هایی داشته برای بشر در واقع پیش از تاریخ اومده از اینجا در واقع تمدن منتشر شده به جاهای مختلف ولی خب یه سری هایی ما داریم می‌بینیم که نسبت به این مسئله انجام میشه ما در قسمت گذشته قول دادیم به شما گرامی که در مورد منابعی که ما می‌خوایم در مورد بحث هامون بهشون استناد بکنیم جناب آقای ایران مهر خب شما پژوهش‌هایی داشتین در این مورد خب تو وب هم تو وبلاگ هاتون و هم توی مقالاتی که داشتین منابع بازشناسی تاریخ میانی چی هست تاریخ این حالا فلات ایران بگیم حالا چه ایران دارا سم بگیم فلات ایران بالاخره یه زمینه‌ای هم باشه برای افضایش نوعی غرور ملی که ما نیاز داریم در این بره کنونی منابعی که ما باید از اون استفاده بکنیم در پژوهش‌های جدید برای بازشناسی تاریخ میانی چی هستش من هم درود می‌فرستم به شنوندگان گرامی خدمتون بگم که اولا من خیلی خوشحالم که این نشست در خدمت خانم دکتر احسانی هستیم. حالا این موهبت رو شنوندگان بعداً درک میکنن که بودن ایشون چقدر کمک میکنه به این نشست. بله همینطور که فرمودین نام این برنامه که خب ایران وچ هست، اون تعریفی که از این برنامه شده بازنگری در تاریخ قلم روی میانی بوده که تصمیم گرفته شد نامش این باشه. چند تا علت داشته نام گزاری. یکی این که خب تو ایران برعکس اون چیزی که تو همه جهان دیده میشه. برخی از هم میهنان ما یه مقدار از این ور بوم میخواستن نیفتن عقب عقب رفتن از اون ور بوم افتادن ما گفتیم اگه یک ایرانی این قاتش باز اضافه کنیم اینا احتمالاً باز حالشون بد میشه قلمروی میانی رو نام بردیم که پیوستگی این منطقه رو نشون بدیم چون بعدش هم رو همین بحث می‌کنیم بله یعنی می‌خوایم ما بحث کنیم که یک جایی به نام ایران که تو همین 100 سال انگلیسی این خطو دورش کشیده منظورمون این نیست اون موقع هم کشوری به نام بابل کشوری به نام آشور کشوری به نام یونان کشوری به نام ایران که اینا همسایه هم باشن مثل الان عراب و پاکستان و اینا نبوده این قلم رو از هندوکوش کشیده میشه تا نیل تا شرق اروپای کنونی و درباره این گستره ما بخواییم بحث کنیم حالا دوستان هرچی میخوان دوستان نامشو بذارن توی این مباحث ما جلوتر که میریم این نمود پیدا میکنه که ما رو برخی هممون یک نظر چارچوب کلی رو داریم میریم جلو نظرمون تقریباً تقریبا توی این زمین کلی واحده اما تو جزئیات از اونجای که علوم انسانی سیاله مثلا علم سیاله رو به پیشرفته علوم انسانی هم جدا نیست از این قضیه ما رو برخی مباحث با هم دیگه بحث خواهیم کرد هرکس نشانه هاشو ارائه خواهد داد و اون پژوهش که کرده گاهی هم با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنیم توی موضوع دو تا نظر رو در یک باره در یک موضوع مطرح خواهیم کرد همینطور که شما فرمودید معتقدیم میتونن بیان اینجا چه حضوری چه بیان رو خط و نظراتشون رو بگن اما از این که ما اینجا اگر رو بعضی موضوعات اتفاق نظر خیلی صد درصد نداریم خوشحال نشن ولی که ما مثلا مبنا رو برین گذاشتیم چون یک نظری درست باید اینطوری باشه باید به چالش کشیده بشه باید از به مختلف بحث بشه اون نظریه که الان موجوده همه به یه شکل همه سرش اتفاق نظر دارن یک فرضیه اثبات نشده رو به عنوان یک اصل اصلا دیگه انگار از آسمون اومده پذیرفتن هر کس هم میگی همونو برات این عیناً تکرار میکنه خب این معلومه اصلا بزرگترین نقطه ضعفش همینه که یعنی هیچ جای بحث نداره هیچ کس نمیاد به خانم دکتر اصلا اون زمینه طرح اینو مسن بررسی کنن خودشون بررسی کنن یک قداستی براش قائل شدن کسی هم که بر سراغش تکفیرش میکنن به قول معروف دانشگاه رفتن خیلی کار خوبیه کسی که میاد تو هر دانشی بسکنه بود بره اون مدرس دانشگاهش تمی کنه اما خب چه فایده به قول معروف کلاه بی پش که فایده نداره توی تاریخی که ما میخوایم مطرح کنیم چند تا چیز از اهمیت که توی نظریه کنونی هیچ بهش نشوده چون فیلم رو از وسطش دیدن این نکته مهم میشواد به نظرم نیاد خیلی یکی های متأخر زمینه بله که اصلا ما از نظر زمانی و از نظر دیرین هواشناسی بررسی کنیم های اخیر زمین کی بوده چجوری اتفاق افتاده تو اون یخبندانا انسانها چیکار میکردن تو هر جا که زندگی ما منظوم نمیکره شمالی این مهمه بعد ما نقاط ثابت تاریخیمونو پیدا کنیم نقاط ثابت تاریخی چند نقطه مشخص تو تاریخ ماست ما که تقریبا تمام شواهد درباره وجود داره آخه بعضی چیزا هست درباره بحثه بعضی چیزا هست نه خیلی مشخصه اون نقاط ثابت رو ما باید پیدا کنیم مثلا درینی که در تاریخ روایی ایران به جمشید اطلاع داده میشه که میخواد سرما بیاد این یک چیز مشخصیه دیگه ما کاری که باید بکنیم با تطبیق بدیم ببینیم تو گذشته فلات کی اون سرمایه مشخصی اومده که اینقدر حیاتی و جلوه داشته که در تاریخ اسطوری ما ثبت شده این آه. یه نقطه مشخص میتونه باشه یه نقطه مشخص دیگه مثلا با ستاره شناسی میتونه به دست بیاد مثلا خورشید گرفتگی رو از این طرف تا 80 هزار سال قبل از اون طرف تا 80 هزار سال بعد ستاره شناسو به روشنی میتونن بگن آدرین تاریخ در این ساعت سایه خورشید اینجا رد میشه میره اونجا این چیز قطعیه ولی کسوف راحت میشه تشخیص داد ما از روی شواهدی که داریم و خورشید گرفتگی روی که رخ داده مثل اون جنگ مادولیدی و حتی قبل ترش میتونیم یکی از شاهان کیانی رو که گزارشش شد داریم میتونیم مشخص کنیم. می‌دونیم منابع ما کتاب آی دکتر فلان از کتف... کتاب بهمان نیست. چون به قول دکتر جان شادرحشانی ما منابع دست اول بادرای بدیم. چون اگه نظریه آی دکتر تو کتاب فلان رد بشه، نظریه ما هم رد میشه. بله دقیقاً. اما وقتی شما سند سومری میاری میخونی، دیگه سند سومری که نمیشه رد بشه که. دسته اوله. خدمتتون بگم یکی اسناد روایی موجوده مثل اوستا منظور اوستا کتابی که از آسمان نازل شده بر زرتوش منظور اون نیستا اوستای کهن اون چیزی که تاریخ ایران توش ثبت شده وداها هست خدمتتون بگم که این طرف اسناد فراوان میان رودانی خوشبختانه هست اسنادی که این پادشاهان مختلف مثلا شهر کی شهر ادب خدمتون بگم که فلان شاه آشور، فلان شاه سومر گزارش دادن دیگه مثلا فلان شاه گزارش داده من رفتم شهر ارمنوم را گرفتم بعد رفتم مثلا به لولوبی های خب مشخصه وقتی از اونجا را افتاده به طرف لولوبی اول از شهر ارمنوم گذاشته بعد لولوبی رو گرفته دیگه اینا میتونه آه. به ما کمک کنه خب همینطور اسناد مصری هست همین اون هیروگلیف ها خیلی ارزشمندن دقت به واژه هاش دقت به اون روایت هایی که اتفاق افتاده اینا تو این همین قلم روی میانی چون این همه با هم ارتباط دارن شاید یکی بگه آقا تو داری اینجا صبح ب به به مزگاه داری رامسس سوم پیکی رو میفرسته به بختان بختان منظور همین بلخه که باکتر ثبت میشه که شاهزاده خانومی رو که پیمانی بسته بودن با حاکم اونجا فرمان اونجا که دختر این حاکم بشه زن رامسس سوم. گزارشش هست. پی که رامسس سوم برای رسیدن به اینجا 17 ماه در راه بوده. خب وقتی که دو تا حاکم در بلخ و در مصر اینا همدیگه رو میشناختن بعد پیمان می‌بندن که این دخترشو بده به اون. خب این معلومه اینا کاملا در ارتباط بودن. بله مصر از کاشان می‌رفته به مصر. لاجورد از بدخشان میرفته به میانرودان و مصر. ما میگیم وقتی میگیم 4000 سال پیش یه عده آدم رو فرض بکنیم شکل میمون در حال علف خوردن بودن اصولا تفکر عامه اینه درصال که اصلا اینطوری نیست به اصنات مراجعه بشه خیلی چیزا مشخصه درسته خیلی چیزا موزشته اما خیلی چیزا رو ما میتونیم مشخص کنیم معلف که به طور کلی ما در اینجا میتونیم به کار بگیریم در پاسخ فرمای شما هواشناسی تاریخی هست یا دیرین هواشناسی که ارز کردم. همونطور که ارس کردم های کوهن هست. منابع شناسی که کشف شده هست. ژنتیک جمعیت هست. استفاده از زبانشناسی کاربردی هست. تبارشناسی تاریخی بر روی مسئله پیدایش خط ما میتونیم به این نکته ها توجه بشه مثل یه که دستمونه و میتونیم راه رو پیدا کنیم. و اینها باید به صورت انباشت به صورت تجمعی این دانش ها به کار گرفته بشن یک کوزه رو پیدا کنیم بهش نگاه کنیم بعد تاریخ بنویسیم اون به درد لایجرز دیوار هم به قول معروف نمیخوره شاهدای دیگه هم باید تاییدش کنن من در خدمت شما هستم حالا باز بله دقیقاً اتفاقاً تو هر پژوهش علمی ما باید یک سری های تاریخی و انباشت‌های یافته‌ها بعد صورت بگیره شما مثلا برای اینکه یک پایان‌نامه مثلا 200 صفحه‌ای بنویسید حداقل دو هزار صفحه سه هزار صفحه باید یادداشت برداری داشته باشه تا که بتونه از دو حد دقل گلچیمه حالا بگذنیم که متاسفانه تو کشور ما نامه ها جوری نوشته میشه خرید و فروش میشه و سطح علم چقدر اومده پایین و خب حالا علاج بررسی هم داره دقیقا چرا چه اتفاقی افتاده جناب آقای ایلان مهرگرامی فرمودند در مورد منابعی که میشه ازشون استفاده کرد جناب آقای کریم شما به عنوان متخصص و دانشجوی رشته زبان شناسی از زبان شناسی چه استفاده هایی میشه کرد و میشه به عنوان منبع تاریخی استفاده کرد یعنی آیا زبان شناسی ابزار درستی و منبع درستی برای استفاده و برای بازشناسی تاریخ ایران و بزوتاریخ قلمرویی میانی میتونه باشه یا نباشه به نام خدا با درود خدمت شما عزیز بعد خدمتون عرض کنم که دانش زبان شناسی یکی از برگ های اینه که میشید از علم بیشترتون استفاده کرد یعنی اینکه بتویم حتی ما از علم فیزیک برای شناختن اواها ها ازش استفاده کنیم بدیم که اینا چهجوری تغییر کردن خوشه های همخوان چهجوری تغییر کردن همخوان ها خودشون جوری تغییر کردن واک ها چهجوری تغییر کردن بتونیم اینا رو پیگیری کنیم تو اسناد میان رودان به خصوص بله. مثلا یکی از دلایلی که میارن میگن آریایی‌ها تو ایران نبودن اینکه میگن آقا واژه‌های در زبان آریایی هست در ریشه های مثلا سامی پیدا نمیشه در سومری پیدا نمیشه ولی بسیار من برعکس اینو میدونم که بسیار واژه‌هایی هست در این زبان ها که ریشه آریایی داره و هیچ توجهی بهش نکردن و ما میتونیم خیلی راحت من مثلا ما میتونیم بگم نزدیک 200 واژه اکدی ما تونستیم سومری بکنیم 50 تا واژه سومری نزدیک 60 واجه واژه که البته اون در قفقاز هستش تونسیم واشای آریایی پیدا بکنیمونن با اسناد خودشون من برای همین همیشه تاکید میکنم که ما همه دانشمندای اروپایی بد نمیدونیم مخصوصا حتی در رشته زبان شناسی چون اونا هستن خیلی اصلا که اصلا به این چیزا اعتقادی ندارن که آریایی کی اومدن یا کی نیومدن براشون چندان اهمیتی نداره یعنی اومدن بر اساس داده هاشون عمر اینا رو درجه بندی کردن خب ما داریم مثلا در اروپا کسایی داشتیم که اونا هم متوجه شدن که این دروغه و خاصه به ما هم یاری برسونن و بیشتر از اروپا در آنکای شمالی ما می‌بینیم که دارن بیشتر اینو تجزیه تحلیل می‌کنن که میگن این تاریخ اروپا یا برای ایران نوشتن بیشتر ریشه استعماری داشته و هرگز نمیشه به اونو استناد کرد مثلا در اوای کتاب میراث ایران که واسه سی از قاهره شناسون تعریف شده اومده که اینجوری قشنگ توضیح میده میگه با در نظر گرفتن سهم عظیمی که نژاد آرگیایی در تاریخ جهان دارد جای تعجب است که ما اهالی مغرب زمین یعنی اخلاف این نژاد از است و بنیاد و اهمیت این تیره و فرهنگ و سرزمین هایی که مهد و گهواره اصلاف ما بودند تا این حد بی‌اطلا باشیم مردمان باختر زمین تمدن‌های رومی، یونانی و یهودی را کما بیش با شیر مادر مکیده و آن را جذب و حذف کردند در حالی که برای اکثر مردمان صحنه های وسیع تاریخ ایران که اسداف و اجداد ایشان از آن سامان برخواستن و پرورش یافتن چ ماه آسمان دور و خارج از دسترس می باشد یعنی اینا خودشون به این نتیجه رسیدن که اسف اینا که ما بهشون میگیم آریایی و خودشون میگن هندورپایی که ما در و بعد میگیم که این هروپایی واژ واقعا ساختگی و اصلا ریشه علمی نداره ریشه تاریخی هم نداره خودشون هم میپذیرن که گذشتگانه خودشون از این من تا به کوچ کردن و به اون سمپ رفتن. خب تاش زمانش خیلی راههای دیگر رو بهمون میده. خیلی راهکارهایی رو بهمون نشون میده. مثلا وقتی ما میبینیم که در زمانهای آریایی که حالا من واسه تکرار می کنم اندوپویتون جا افتاده، ما مثلا 6 تا حداقل واژه داریم در مورد گردیدن. خب این نمیشه بسازی گداش گذاشین. پر از رازه. باید. وقتی شما یک زبانی میتونید حداقل 6 تا واژه ریشه ای، ریشه ای که مثلا هر کلمش ممکن چند تا 10 تا واژه ازش دوش در بیاد. وقتی شیشتمون شون ریشه هندورپایدت که حداقل برماده گردیدن و چرخیدن یعنی اینکه اینا چرخو میشناختن اینا رو میشناختن پس باید گردونه رو شناخته باشن پس بعد آسیا بادی آسیا دستی بعد تغییر محبر که سازندگان جانسون درخسدی هم آوردن که چهجوری میاد به عقب که چپ نکنه مثلا این گردونه شون همه اینا رو بعد میشناختن وقتی میبینیم که واژهای مثلا واژهای که در ماده ناو کشتی و قایق هست. بله. واژه‌ای که در مورد قلاب ماهیگیری هست، خیلی جالبه. واژه‌ای که در مورد حیوانات دریایی هست، مخصوصاً در حیواناتی که در آبای شیرین زندگی میکنن خیلی نشون میده که این منطقه که ما زندگی می‌کنیم چه خصوصیت آب و هوایی داشته. خب چگونه ممکنه کسایی که مثلاً اینقدر مثلاً زندگی در این حد داشتن اون سرسبزی و ول بکنن یا در زمانی که ولاتی اینو سمت خوشحالی بیاد، منظورم می‌خوام به قول خودشون به گاوفشرونی و گله داری ببردازن اصلا کدوم هم چیزی پذیره کدوم خلادی میپذیره که یک زبانی شیش تا گردیدن داشته باشه ولی مثلا چرخ مصومری یاد گرفته باشه چطور میشه پذیروف که الان مثلا میگم فعل نوشتن ریشه اش مثلا ریشه ایندکروش پریسه به اونهای کندن و نوره دود کردن و نقاشی کردن که فعل نوشتن فارسی ازونه البته بگم نوشتم با نوشتن فرق که بعدا در این فیلتون ریشه شما تو زبانه اسلاوی غربی هم پیدا کردیم خب چطور ممکنه اگر خط نداشتن پس چطور واجه درماد خط داشتن خب نشون میده که همه اینها دروهایی بوده که گفتن و فقط سنده اینها فقط تکرار بوده یعنی هیچ وجه علمی نداره فقط تکرار بوده میگفتن چرا شما میگید؟ میگن مثلا چون دی گفته گفتم. مثلا شما شما میگید میگم مثلا چون ویلدرانت گفته و مثلا شما میبینید همین حرفهایی که به نفع ایران زده میشه اصلا شاید توی یکی از بعضی از کتاب‌های مثلا خیلی با تیراژ کم چاپ بشه و اصلا دانشگاهی نشه. ولی حرفهایی که ضد ایران هستش کاملا دانشگاهی میشه با های بالا با پوشونر رسانه من خب شاید این پروسش واشنده عزیز پیش که چرا میخوان کار بکنن؟ چرا مثلا براشون انقدر مهمه که ایران مثلا تاریخشو سرکوب کنه؟ خب ما الان ما میبینیم از ملت مصر چیزی نداریم دیگه الان ما دقیقاً بسیار سیارمون جدا کمی دارن از سمت میان رودن که بابل آشوری دیگه باقی نمونده ولی این ایران هنوز باقی مونده بله اینا از این میترسن که اگر مردم اعتماد به نفسشون رو بذارن دست بیاره خب تاریخ اعتماد به نفس میده اگر ملت بتونه اعتماد به نفس از دست رفتش رو به دست بیاره بسیار میتونم ابرقدرت بشه توی کشور توی منطقه و جهان بیشترین ترس و واهمه که دارن از اینه برای همین شروع کردن و پوشش کردن که بخوان اینا رو از هم دیگه جدا بکنن حتی بخوان مثلا تحریکات جدایی طلبانه در ایران پخش بکنن که هیچ کدومشون سندیت نداره فقط رسانه و دروغ پشتشه و من اخیراً برای اینکه که زبانش ها بسیار به ما کمک بکنن چون دیگه جای اما اگر توش نیست نمیشونم بگم به اندازه جنتیک. خب خیلی بیشتر مثلا میتونم بگم که نسبت حتات به باستان شناسی ما میتونیم مثلا خیلی قانون منتر رفتار بکنیم برای همین خود من ترجیح میدم اسم منابع کتاب های درسی معتبرم آورده بشه واسه همونجوره خواهش میکنم از اساتید محترم که اگر نظری مخالفه این دارن در این برنامه شرکت کنم از پرسششون مطرح بفرما خیلی در زمینه میشه صحبت کرد مخصوصا وجود واجه‌های آریایی در زبان‌های سامی که بسیار گسترده است که نشان از این داره که حداقل 1970 و۴ پیش از میلاد و هم در ارتباط بودند و واژ های بنیادین حتی واژهایی که در مورد بیماری هستش ما پیدا کردیم واژاییهایی که در مورد همین فل گردین هستش، واژه که در مورد پختن هستش ما مثلا میان مین واژه آج واژه اکدیه به هیچ عنوان هم چیزی نیست. خب ما چرا مثلا از زبان هایی که می بینیم در هزاره 1970م پیش از میداد اسم قوم کرت در ال سومری میاد. ولی اصلا به زمان کردی هیچ دروجی نمیشه. اونم میان این مجموعه شاخه‌های های ایرانی میگن مثلا خود ایرانی 1500 پیش از میلاد بعد کردی هم مثلا انقدر خب باز چجوری یک پس اینا 3500 میلاد نامشون اومده چرا زبانشون فارسی نمیشه؟ شاید خیلی از واژهای کردی وارد اکدی شده باشه و از اونجا وارد زبان عربی شده باشه. ولی شاید عکس برعکس و خیلی از واژهای کردی وارد زبان سومری شده باشه. ما اخیری از توی زمینا کار کردیم خیلی چیزای جالبی هم پیدا کردیم که بمون روز زمان نورا بس هم اندگان خاین گفت. بعد اینکه زبان‌های بومی ایران بسیار داره ریشه کهنی هستن حتی از افسسی بعضی ازشون کهن‌تر ریشه داره نه که از خود زبان از لحاظ نحو و اینا کهن‌تر باشه از لحاظ ریشه شناسی واژه‌ای هست مثلا در زبان تالشی واژه‌ای هست از خود افسان کهن‌تره بله بعد بله. مثلا چش نمی‌میاد مثلا به دمودش پژوهش نکردن خب می‌تونه خیلی کارساز باشه ما می‌تونیم اونجا بدونیم که از زبان تلاشی خیلی باجایی وارد زبان ارارتورو شده و بعدی زبان دیگه مثل هوریانی اونا خیلی وارد شده این به ما خیلی کمک میکنه که بتیم در آینده بیشتر ثابت بکنیم که این تاریخی که میگن دروغه و اصلا ویژه علمی نداره. بله آقای کنیم شما فرمودین در مورد واجه ها. البته ما خیلی اسرائیلی هم نداریم که این واجه های آریایی که حالا ما میگیم لزوما زبان فارسی یا پارسی هم نیستش یه زبانی است که تو همین فلات ایران وجود داشته و داره و قومیت ها و گویش های مختلفی که الان توی ایران ما داریم که از قومیت ها که به قول آی کریمی که فرمودن مثلا ما از گویشی که در میان مردم تالش، در میان مردم بلوچ، در میان مردم ترکمن، در میان مردم آذربایجان که خود بنده از اون خطه هستم شاید هایی باشه که ریشه مثلا اوستایی داشته از هم که کهن‌تر باشه که می‌تونه زمینه‌ای برای تحقیق و پژوهش برای به وجود آوردن سرنخ‌هایی از تاریخ ایران باشه و این تاریخی که نوشته شده و توسط استعمار نوشته شده بازنویسی و بازاندیشی بشه. می خوام دکتر حسانی خب ما چند دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. خب تحصیلات شما در مورد ایران شناسی هستش. منابعی که شما فکر می کنید حالا منبع لزوما همونطوری که آقا ایران به کتاب و اینها نیست چون متأسفانه در مجامع علمی ما مثلا وقتی که به یه پایان نامه یا به یه تحقیقی که داده میشه خیلی من هر وقت می‌بینم واقعا عذاب میکشم مثلا یه استاد راهنمایی میاد پایان نامره بازمون نگاه نمیکنه که مثلا این چپ در واقع مفاهیمی توش هست چپمونیه علمی توش هست نگاه میکنه به آخر اون منابع لیست منابع چی هستش به اون نگاه میکنه و هر وقت هم لیست منابع توش تعداد منابع لاتین انگلیسی باشه بهبه خیلی خوبه بعد تو جلسه دفاعی هم خیلی بهب و چچم میشه اون نامره بالای 19 و فلان اینا ما منظورم از منبع اینه که اصلا ما از چه مبناهایی پیشه منظورم از خیلی مبنایی تره خیلی بنیانی تره از چه بنیانها و از چه مبناهایی میخوایم استفاده کنیم برای بازشناسی و بازبینی در مورد تاریخ ایران تاریخ واقعی ایران ببینید این پرسش رو آقای ایران مهر پاسخ دادن یه جوری ولی حالا اگر مثلا بخواییم ریز بشیم درباره اون پاسخی که اینا داشتن مثلا در یک شاخش بخوایم خیلی ریز بشیم فرض بفرمایید میتونیم راجع به اینکه استوره های ایرانی باید به شکل جدیتر بررسی بشن این یه نمونه است منظورم این نیست که میگم مثلا برای مثال استوره های ایرانی باید خیلی جدیتر بررسی بشن این اسطوره ها رو بیایم و یک کمی جدی بگیریم و روشون کار درست پژوهشی انجام بدیم. بله دقیقاً. حالا اینکه چه جوری باید جدی گرفته بشه و کار درست پژوهشی روش انجام بشه این خودش یک مبحثیه که خیلی زمان ممکنه ببره صحبت کردن دربارش. شاید بشه توی برنامه های دیگه اصلا راجع به این موضوع یک برنامه جداگانه‌ای داشت و دربارش صحبت کرد. ما باید این کار رو بکنیم ولی ما هیچ وقت نمیدونم دونم تخطقش رو نداشتیم یا جرئت نمیکردیم به خاطر اینکه انگ سوادی به همون نزنن بزنن نمی کردیم که بیایم و بگیم که بابا بیایید اسطوره ها رو جدی بگیریم بیایید خدای نامه ها رو جدی بگیریم بیایید شاهنامه رو جدی بگیریم اینا من فکر میکنم برای مثال اینها منابعی هستن که امروز باید جدی گرفته بشن و حالا چیزهای دیگه هم هست خیلی متشکریم خانم دکتر وقت برنامه هم اجازه نمیده بیشتر از این ادامه بدیم 45 دقیقه هست هر قسمت از برنامه ما تقریبا داره رو به پایان هست از شنوندگان گرامی بابت توجه به این برنامه کمال تشکر رو داریم در این قسمت سوم هم ما باز هم به مبانی پرداختیم هنوز وارد بحث شیرین تاریخ نشدیم بحثی که قسمتیه در واقع غرور ملی ما ایرانی ها رو قطعا بالا خواهد برد و به این سرزمین افتخار خواهیم کرد که واقعا تاریخی بالاتر از بیش از سه هزاره داره اون قسمتی که در واقع گفته میشه که ما بیشتر حالا بعضی منی دو هزار و حالا برخی الان دارن میگن حالا دو قربیه سری افراد پیدا که میگن اصلا ده دیاکو هم اصلا استوره بوده حالا شاید میگم اگه واقعا ما نخواهیم صحبت بکنیم ولی باید به نظر من جدی گرفته شوخی نیست این مسئله تاریخ کسایی که با یه ملتی با یه خاکی در واقع سر سازگاری ندارن اول دوستان شناسنامه او رو باطل بکنن وقتی شناسنامه او رو باطل کردن هویتش کردن هویتش رو ازش گرفتن خیلی راحت میتونن برش مسلط بشن و مستمرش کنن و استثمارشون کنن و, و استهمارشون کنن از خواهی میکنم از این کلمه شما شنوردگان گرامی تا آغاز قسمت چهارم این برنامه به